درود شنوندگان رادیو البورز امیدوارم حال دل هاتون خوب باشه در این زمان مهمترین عناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته ای که گذشت رو به سمت شما میرسونم یک پناهجوی 41 ساله که با اعلام اینکه همجنسگراب بوده و جانش به این واسطه در کشورش در معرض خطر قرار داشته در ماه دسامبر سال 2015 وارد سوئد شده بود و تقاضای پناهندگی نبوده بود ولی اینک به اتهام تجاوز به یک زن در شهر فالان سوئد از سوی دادگاه بدوی به دو سال و نیم زندان و اخراج دائم از سوئد محکوم شده است. به گفته زنی که مورد تجاوز این مرد قرار گرفت، روز چهارده جوان سال 2016 هنگامی که درب منزل وی را زد و او در درب منزل را باز کرد، متهم در پشت در بود و در حالی که یک کتاب انجیل در دست داشت از او آدرس یک انجمن را که در نزدیکی او قرار داشت پرسید بنابر مندرجات پرونده پس از آنکه زن در رابطه با آدرس به این مرد کمک کرد و در حال بستن در به آپارتمان خود بود و وی پای خود را لای در به در آپارتمان گذاشت و از بسته شدن آن جلوگیری کرد و با